اگر اجازه بدید من پیامک کار رو بخونم چون بسیار زیاد هست و سوال مختلف کردند و گفتن در مورد اقوام مختلف زبان مختلف کردی در مورد ایل قشقایی در مورد ها صحبت بکنیم این رو ما تو طول برنامه صحبت میکنیم من اما میبینم پیامک های شما رو انشاءالله خود آقای دکتر جنیدیم بین صحبت این کار رو انجام میدن با دروز فراوان استاد گرامی جهت آشنایی با ریشه واجه های فارسی و ارتباط دیگر زبان ها با زبان فارسی چه مرجعی معرفی میکنید شاد باشید دانشجوی دکتور نانوفناوری دانشگاه تهران حالا چه ارتباطی بینید نانو به فرهنگ خودشی علاق نه نه من دوست دارم اتفاقا آفرین آفرین من هفته پیش تو هفته پیش گفته بودم و یک نفر خصوص که اروپاییاییه که با کمال شوق و میل دارن در راه کار را میکنن شما چرا به اونا میتازید من گفتم من به همه نمیتوزم از جمله که هارولد بولتر بیلی پوتریس اون فخردقه انگلسان بود که کتاب فرهنگ مفصلی فراهم آورد و ثابت کرد که همه در ایرانه همین دانشمندانی که ما خیال میکنیم برای ایران دارا کار میکنن همه اصول کردن همه فریاد حقوقو همه کوبیدن بیلی رو و کتابش از بین بردن و شادش فقط یه چند شماره ای که قبلا پخش شده بود اونو باقی مونده برای که بیلی در اون کتاب گفته بود که دانشجوئی انگلیسی هم که بخواهد نیک زبان و مادری خیش رو بیاموزد بایستی آگوایوی از کتابهای فارسی باستان بنا سراغ این اوغا بلند کرد در اروپا ولی اونا نمیخوان بگن ما مادرمون ایرانه و این دانشجوی عزیزم که در این رشته کار میکنه که ما بهش نیاز داریم و در آینده جوان ما با به این رشته ها بیشتر خب خونش و نجاتش و غرتش میکشه به طرف فرنگ ایران. با. متاسفانه هم که در ایران نوشته شده همه بر بنیاد دو اروپایی چنین چیزی رو نشون نمیدن. اما من در گفتارهای خودم بسیار از این کارال کردم. Uh, که نشون میده که حالا یکی از اینا رو من میگم اگه شما با تانش نانو اون رو بررسی کنید که در کلاس ها من بیشتر این میگم واجه ای هست در عوستار رعو چهنگه این واجه در پهلوی در فارسی باستان یعنی کتی سنگ نوشته های اخامانشان میشه رعو چهنگ بعد این واجه در پهلوی کهن میشه روج همین واجه در پهلوی کهن میشه روچ و این همین دف... واجه در فارسی دری میشه روز که امروز ما بهش میگیم روز حالا شما نگاه کنین از روچنگ تا روز چقدر ساده شد تا به روز برسه خب من از شما میپرسم آقای از شما در روز چه خاصیتی هست که ما اون نام روز بهش میدیم روشنایی. شما باید بدونین که در تاجیکستان، افغانستان، خراسان این ور روشن رو میگن روشن روغن رو با ربوچنگ 20% می‌بینید که اینجوری که مفهوم بوده زیاد تغییر نکرده اما اونجا که نام بود از ربوچنگ رسید به روز خب حالا بعد از اینکه به روز رسید در کاشان و دامغان و در شیراز و در بعضی نواهی رو شده میگن رو امرو دیرو ترونیا قدیم میگفتن علی شما شنید گفتن لال امرو من امرو میام در دامو امرو خب ببینیم این دیگه اینجا کیفیت خودشو از دست داد اونجا یک سوش ره بود یک سوش چه بود که کم کم به زه تبدیل شد و همینطور مثل یه هرم که سرازیش باشه خودشو خلاصه کرد و نشون میداد وقتی که به رو رسیدیم رو نشون نمیده دیگه چیه ممکنه روی صورت باشه ممکنه یه چیزی روی یک چیزی باشه خب اونجایی که روز بود ره تبدیل به له میشه. و زه تبدیل به سه میشه میشه لویس به زبان ارمانی لویس یعنی روز و یعنی روشنایی خب یه قابل تبدیل به که هست مثلا داناکان و دانایان خب بنابراین این لویس میتونه تبدیل بشه به لوکس در زبان فرانسه و در زبان ایتالیایی یعنی یعنی روشنی و باهد روشنایی در فیزیک از اونسو روچ پالوی کوهان در زبان بلوچی امروز هست رج و در زبان بلوچی اگر بخوام بگن امروز میگن مروج شد رج. واجه ها میتونن که برعکس میشن مثل پرهیز که در زبان تهران هست در آزربایجان پهرز گفته میشه در دیلان و در خیلی از جاها لوری و لکیو پرهیز شده پهرز یعنی عکس میشه خب یا مثل این که واجه ملخی که ما میگیم در زبان ارمانی مخر گفته میشه. این،, این خاصیت در زبان هست. بنابراین روج، مروج که یعنی مشک امروز هست که روجش در زبان بلوچی برعکش شد. شد جور، جورنو در زبان ایتالیایی یعنی روز. اونجا که در زبان کردی روج بود در زبان کرماشانی شد روز. شما که خودتون دیگرونم؟ این روش که رموسیونی برعکس شد شو شد و به زبان فرانسه اینا همه از ریشه کهنه اوستایی گرفته شده همه این زبان ها همشون همین همین طوره مونتا اروپا نمیخواد قبول کنه و داره دانش درست میکنه من به کمک جوانان ایرانی این کارو میکنم امیدوارم که دانشجویان نانو هم به ما بفهمند برام کمک بکنن کار خیلی بزرگی که فعلا یک جوان ایرانی کرده آقای منوچهر مشتق خراسانه‌ای که درباره فرهنگ در افسورهای ایران دو کتاب مهم چاپ کرده که به زبان انگلیسی در آلمان چاپ شده و ایشون هم یک سخنرانی در دانشکده میراث فرهنگی داشت که فناوری نانو در ساختن رنگافسر در زمان صفویه رو بررسی کرده بود شما برای ایران کار بکنید پیش برید یزدان یاوار شماست با فرهنگ ایران با خدا با درود و سپاس بر استاد جنیدی به هدایتی شخصیت افراسیات چگونه است که از دوره منوچهر به بعد تا چندین دوره هست آی محمد گرژی از اصفهان پرسیدن شاد باشید من اینا رو گفتم اینا نماده مثلا زال نماد نجاد سیستانه و رستم نماد نیروی سیستانه وقتی که نیرو میگیره رستم پر میشه شما میبینه که در بعضی جنگ ها رستم نیست یعنی چی؟ جنگ شده چرا جا هم پهلوان نباده باشه؟ برای که اون زمان سیستان نیرو نداره همین نام فری برز گفتم اقوامی که برفراز این البرز میانین بودن و بارها من بودرز گفتم که نیای آذربایجان و کردستان و لک و لورستان هست و بعد فرزند و گیب نماد در حقیقت نجاد لور و بختیاریه اینا همه فقط کدوم نماد یک تیره ایلی هستند. افراسیاب در امیستاب به صورت فرانک را سعیان اومده. یعنی کسی که مرتبا قطع میکنه گردن و دست و پا این در تمام طول این مدت دراز می بینیم که اونها این خاصیت رو داشتن یعنی تورانیان این خاصیت رو داشتن بنابراین در این مدت دراز همواره به هم این نام و افراسی ها از اونا یاد شده با سلام خدمت آقای جنیدی عزیز توازه می‌کنم برنامه را تلویزیونی کنید تا فرزندان ما مشاهده کنند. اسمشونم آقا رضا هستش آقای رضا عزیز ما میخوام بگیم شما بچه ها رو عادت بدید که رادیو گوش کنن چون رادیو خیلی تلویزیون خوب اما رادیو خیلی بهتر و صمیمیت‌تر از تلویزیون است هفته پیش که از اساتید بنیاد ظهور همین رو من گفتم شما این برنامه رو گوش میکنین خوب هامون تلویزیون نگاه میکنن دیگه منم نمی‌سن رادیو روشن کنم من خیلی با درد این موضوع درکات شدیدن بلکه پدر مادرها باید, باید بچه ها رو را راهنمایی کنند. تلویزیونی یک بار دیگه من گفتم میتونست به عنوان بزرگترین آموزگار جهان بشری قرار بگیره متاسفانه این تراستایی هایی که بر روی تلویزیون های جهان حکومت میکنن و غیر از پول چیزی نمیخوان تلویزیون رو به صورت مخررب دروردم و این چیزی که فقط بچه یا جوان یا هر کسی فقط نگاه کنه نیندیشه در حالی که از رادیو بهتر میتونیم ما بیایشین وقتی که یک استاد یه بانوی استاد اینو به من بهه نهتونونه بچه مذکر کنه که هفته یک ساعت و نیم به برنامه شوانا گوش کنند، خود شما بغیار ببینید چطوره. البته این دیگه با من نیست دیگه. بله این, این من نه پاسوق بودم این, رو... این خلاصه. درد خلاص، یه دردیه که جامعه بشه. در من بهترین کاری که چه در ماشین که هستی، چه در منزلی که هستی، رادیوتون روشن بذارید، رادیو فرهنگ باشه. شما اون موقع متوجه میشین چه تأثیری داره رادیو. به مرور اون تلویزیون رو شما خاموش می‌کنید، البته تلویزیون ناراحت نشه. میتونه برنامه های خوبی هم داشته باشه که داره تلویزیون ما ولی رادیو رو بیشتر گوش بدید. تبلح کنم بعد تحقیق کنم اینجوریه رادیو فرهنگ که تبلیغ عین واقعیت. یه پیامی اومده من دوست دارم بخونم. سلام جعفری هستم راننده کامیون به خدا به قضیه برنامه و کلام شیوا استاد علاقمند شدم که با شروع برنامه‌تون در پارکینگ جاده میستم و تا آخر برنامه رو با دلو جان گوش می دهم. بعدش راه می راه می افتن پاینده و برقرار دارد شاد باشید آقای جفری این جاده های ایران دهشت های ایران زیر چرخ های شما، شما رو همینطور فرخونده نگه دارند همینطور دلشاد نگه دارند و, و با مهر ایران زندگی کنید فرزندانتون رو با مهر ایران بزرگ کنید و به جای ما هم الان نور محتابی روی شبه چندوم آقایی؟ م... هشتم نمیدونی؟ نه, هشت... نه میدونم چون دیدم من دیشب ماه دیدم نینی از ما درست نیم دایی رسالت. درست نیم دایی رسل کم نشید ماه زیبار هم تو این ببینید ها ببینید از گرسید ستاره بارانه ستاره ها هم ببینید این سفرها برای شما فرخنده بود. مخصوصا گفتم که نمره کم نگیرم چون دیدم واقعا دیدم مخصوصا و یاداوریه و این یاداوری هم برای من هم برای شما شنوندگان عزیز که این باه زیبا رو ببینید به هیش یزدان که برای ها. شما آفریده برای خرمی شما آفریده و البته وظایف دیگه هم حتما در داره در منظوم شمسی ولی لاغل ما این, این زیبایی ها رو خداوند برای ما آفرده ببینیم تلفن های برنامه 222 4185 220 588 دو 0 و پیامک 3558 پیامک های زیادی از شما رسیده که سوالات رو استاد پاسخ گفتند بین صحبت هاشون پاسخان اگر من ببینم به موردی بر بخورم حتما خدمت رو استاد مطرح خواهم کرد. انبالی داستان چه آگاهی آمد با آزادگان برای پیر بود درز کشبادگان که یعنی توسو تجبوز اونجا نتونستن کاری انجام بدن بیا راست پیلان و برخواست دو بیا آمد جهاندار نو ای خواست بر پشت زین یکی نامه فرمود با آفرین که این نامه از بنده کردگار جهانجوی که خسروب نامدار من که خسرو میخونم درستش کای خسروه؟, خسروه. خسروه خسرو در عوسته بوده ها او سرهونگ ها او یعنی خوب سرهونگ نی شده نیک سروده شده بعد یعنی کسی که نامشو به نیکی میسرایند. این واجه شده در پهلوی که خسروه در فارسی شده کی ما امروز در تیران و اینا میگیم خسرو این نادرسته خسرو درسته در خراسان میگن خسرو هنوز هم به همین آین و در یکی دو باجه هم هنوز ترکیب خسرو دیده میشه شما میتونی فکر بکنید چی؟ خسرو، خسروانی خسروان بلد. یا خسروی بلد. اینجا در حد همون تحکیب دیده میشه روستش کای خسرو فارسی که این باندی کردگاه و جهانجوی کای خسرو نامدار گره این دیج برو بوم است جهان آفرین را به دل دشمن است، به فر رو به فرمان از دان پاک سرش را به گرز هم در آران بخاک یعنی یا گر یعنی یا. اگر جادوان راست این دستگاه مرا خود به جادو نباید سپاخ یعنی لازم نیست داشته باشم. چون خم در دوال کمند آورم سر جادوان را به بند آورم اگر خود خجست در است به فرمان یزدان یکی لشکر است این لشگری که من آوربم به فرمان یزدان هستند ببینی اینجا اول از احریمن یاد میشه بعد از سروش یاد میشه و از جادو یاد میشه این چه واقعیت شگفتیه کجا بوده چی بوده که همه اینا رو الان که خصوص در دامانه خودش می نویسه و واقعا این شگفتی خیلی بزرگه که الان آشکار شده و در آینده به یعنی آگاهی ایرانیان میرسه که ببینید شاهنه ما چقدر درسته میگذاریم داشته که یکی نیزه بگرید خسرو و به دست همون نامه را بر سر نیزه بست. بفرمود تا گیب با نیزه تفت به نزدیک آن برشده باره رفت. بدو گفت که نامه پند من ببر سوی دیوار کوه بلند. در آن نامه بر نامی از بخوان، بگردان انا تیز و آنجا امان، بلکه آتش بوده. بشد گیب نیزه گرفته به دست پر از آفرین جان یزدان پرست چون نیزه به دیوار دش برنهاد به نام جان جوی نژاد و زدادار نیکی دهش یاد کرد پسان چرمه تیز رو باد کرد یعنی چرمه یکی از نام های رو به سرعت برگردند شدان نامه نامور ناپدید خروش آمد و خاک دژ بردمید همان گه به فرمان یزدان پاک بارومد بران باوری دژ تراک این عکس اون تراکی که اونجا هست من گرفتم در بر ایران خواهد خاطره جهان گشت چون روگ زنگی سیاه چه از باوری دژ چه گرد سپاه برانگیخت که خسرو اسب سیاه چنین گفت با پهلوان سپاه یعنی گودرز که بر دژ یکی تیر باران کنید هوا رو چه ابر باران کنید این تیرها این یعنی سر... حرکت تیرها نه, نه حرکت چیز مخصوص اینکه سرنیزه تیرها اینا پیدا شده باستان شناسان پیدا کردن همین چیزی که در شانون ما هست باستان شناسان ابروز پیدا کردن م... که بردجی که تیر باران کنید هوا رو عبر بخاران کنید حرکت تیر مثل و بحار میشه اون چیزی که شما شده بله از آن پس یکی روشنی بردمید آن تیرگی سر به سر ناپدید جهان شد به کردار تابند ما به نام جهاندار و از فرشا برامد یکی باد با آفرین هوا گشت خندان و روی زمین در ایران باستان دو گونه باد در نظر داشتم یکی بادی که خوب بود و این باد با آفرین بود وای وه بهش وای وای یعنی باد خوب وای یعنی باد وای بر تو یعنی باد بر روی سورتت بیاد وای در جنگ در روی یه سفاهی باد میمد اون سپاه تقریبا شکست خورده بود وای بر تو اینه یعنی باد بر روی تو بیاد و وای یعنی باد, باد وای بر تو یعنی باد رو رو روی تو, تو در جنگ باد به روی تو بیاد باد با تو مبارزه کنه که دشمنی که زیاد نمیخواد موازنه کنه چون بیشتر این رو باد کرده تو دو سه هم که حرکت میکنن از اون سپاه روبرو از این و بلند میشه همون گردوخاک و باد و اینا همه با هم میاد تو میخوره تو چشم سپاهیان این میدونی کم میکنه و دی توان رو کم میکنه عکسش هم ما داریم مثلا کسی واقعا یک کار خیلی مهمی رو انجام داده باشه بدون که کوشش کرده باشه بهش میگن باد به با پشتش خورده یعنی خودش کوشش نکرده باد از باد اینو خودش داده باد اینو حرکتش داده حالا ببینید چه چیزای زیبایی در زبان و ما هست که بهش توجه نمی‌کنیم اگر توجه کنیم می‌بینیم که فرهنگ ما چقدر زیبا باشک و غنی قنی است چقدر زیبایی در گفتارها نهفته است حالا اینجا میگه باد با آفرین اومد یعنی وای و یعنی در برابر وای و هم داشتیم یعنی باد بد و اون چیزی بوده که بوی گند و در حقیقت کشته ها و ها و اینا رو با خود شمرا میورده یا درختان رو میشکسته یا توفان بوده خونه ها رو خراب میکردن و وای وقت بهش میگفتن از طبیعت این در حقیقت اون دیوی که استخانه ها رو میشکسته پس از مرگ اون تو باد اینا رو با بوی اینا رو میورده به چهره وستن کسی میزده وای وه و وای وقت اینی که میگه برامد یکی با آف به این موضوع وای به شد که قبلش وای بود بر آمد یکی باد با آفرین هوا گشت خندان و روی زمین به دشدر شدن شاه آزادگان اما پیر گردرز کشوادگان یکی شهر دیده اندران دش فراخ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ نقشه این شهر در دست من هست که حالا بر اون خواهد بفرمود قسره و بدان جایگاه یکی گمبدی تا با عبر زه آزاب و, و آن ده کمند بگردندرش تا خای بلند زه بیرون چون نیم از تگ تازی است برآورد و بنهاد آزرگوش است آز... آتش کرده آزرگوش است نشستند گردندرش موبدان ستار شناسان و هم بخردان بدان شارسان کرد چندان درنگ که آتشتبه دشت بابوی رنگ من فکر اینجا میتونیم میگم چون زمان برنامه 22 و 36 هست ما تلفون های زیادی داریم و پیامک های زیادی که من خیلی یا سوال های هست و سوالایی که شما پاسخ گفتید اما اون‌هایی رو که من فکر کنم با توجه به موضوع باشه و موضوع تازهی باشه من عرض میکنم شما باید حتما شنونده برنامه ما باشید. هر هر روز از شنبه تا چهارشنبه و خصوصا این یک شنبه ها که سوال می در مورد شاهنامه اصلا برنامه ما رو بشنوید من اگر اشکال نداره نداده گفتم تا این داستان رو داده یعنی رسیدن کی رو نزدیک کی نزد کاووس شاه و اون اتفاقاتی و و که بعده برده. و پیروزی و اون اتفاقاتی که بله و خودداری توس و خودداری توس این قهرمان ما پیامت اینجا هستش که پرسیدن معنی بانو و معنی بانو چیست؟ خانم مریم احمدی از خورم آباد پرسیدن شاد باشید درود به خورم آباد و اون جنگل ها و اون رود سیمروی ها دل ما رو برد بانو به زبان عوضی بان یعنی روشنایی فروغ و بانو یعنی روشنهایی فروغ بانو یعنی فروغه خانه که یکی از صفات بانوان ایرانی بوده فروغ خانه و اگر میخوایید بدونید هنوزم که هنوز مردا میگن که زن چراغ خونه است یعنی تبدیل به بام شده در واجه بامداد یعنی گاهی که زمانی که خود روشنهای خورشید میاد و در کتبانو هم هست درود به کتبانوان ایران که روشنایی خانه های ایران از وجود بناست نور کردن از کجا میتونیم شاهنامه خانی و پرد خانی رو تهیه کرد من من یه وا دیگه شبوره بنیاد نجابور رو عرض می‌کنم این خوب هستش این نکزه دو تا دو تا بخونید آقای کش دو تا دو تا میخونم جفوری گفتم کش دنبال زیادی نمونده گرفتن بیس تلفن تلفون و دورواج به تلفون این دورواج من پیشنهاد کردم و دورنگار رو من پیشنهاد کردم بعدم فرنگستان انتخاب کرده بود نماوبر. بعد از یکی دو سال دید که دورنگار بهتر انتخاب کرد نگفت از کجا گرفتیم خوشبختانه واژه درسته مهم مهم نیست که یه واجه خوب این روز تقریبا 60-70 درصد مردم ایران دورنگار میگن. برای فاکس دورنگار برای رادیو دورواج برای تلویزیون دور نمایی این رو من انخاب کردم. رادیو دورواج نه دورواج تلفن رادیو دور آواز ده. دور آواز بله آوازش دور آواز. به دور میرسه. آ این چهار رو منخاب کردم. پس تلفن برنامه دورواج تلفن بنیاد نیشابور دورواج واژه ای هست که اد انتخاب کردن ه۸. نود و 84 بیست و هفت هشتاد و چهار هشتاد و هشت، نود و بیست و هفت، هشتاد و چهار. دور یا فکس هشتاد و هشت نود و شش، بیست و دو چهل و سه هشتاد هشت، نود و دو چهل و سه. حدود چهل. جلسه از شامنمخانی بنیاد زفت شده روسیدی میتونن اونا رو با تلفن بزنن و بخوان براشون میفرستن و پایگاه اطلاع آدرس اینترنتی www بنیاد نیشابور ڈات یا ڈات ایر, یا دا ای دا ایر. باز میشه یعنی آی آر. ایر استاد میگن ایر. خب من به اینم گفتم بذارید بیام به پیامک های دیگه پرسیدن درباره واژه فروهر توضیح بفرمایید و سلامم رسوندن برای شما و حال احوال کردن با بنده آقای قاسمی عزیز از جم و ریز درو به جم و ریز در کنار اون کوه شگفت یعنی بودن ترین کوهی که نزده خطاست استواست و خیلی شگفت انگیزه اون من پیشنهاد مرم کسانی که میخوان زیبایی های ایران رو ببینن یک بار از اصلیه به طرف جمع و ریز برن تا ببینن که این تباه و چقدر زیباست البته نه اینکه که تباه و گوهای بلوچستان اونجا هم یه جور دیگه است ولی اینجا به یه ترتیب دیگه واقعا خیلی زیباست و مهم اینه که در جمع و ریز و اصلیه اصل طبیعی خداداد بهشون داده خداوند بلکه دیگه در اونجا از شکر و اینا چیز اصلی نیست و زنبور ها میان روی شاخهای درختو ها کندو میسازن و بهترین اصل جهان از این منطقه به دست میاد منطقه من رفتم توی جریان فرسش ایشون رو رو در درباره واجی فربحر فرا این در عویستان از وشی و در فهلاوی و فارسی شد فرا و فرا حرکت به طرف پیش رو نشون میده. مثل فره جام، مثل فردا دا، که ما الان میگیم فردا این در پله بود فره تاگ. تاگ به زبان آلمانی هنوز یعنی روز، فره تاگ یعنی حرکت به سوی روشنه آینده، این فر در ماجیه پروار همین حرکت رو نشون میده. خب حالا وحر رو اگر بگیم بخشش اگر بگیم بر و هر معنی ازش حرکت به سوی اون بخشش و بحری که هست و نیهوش در انسان که انسان ها به گفته نیاکان که در نظر انسان هست و آلایش کارها و های بد روان رو به خود نمی پذیره و پاکو مجرد پس از مرگ به جهان منوی منتقل میشه اینش که روانشاد شهر بزرگمهر بزرگمه در یادگار, زر... یادگار بزرگمه خودش که از نیروهایی که در تن انسان هست فروهر از همه رنجورتره زیرا که میبینه که بشر دروغ گفت بدکاری کرد ناشایست بود اما در کار او دخالت نمیتونه بکنه این سخن بزرگمه شاد نشانه از آگاهی بزرگ و شگفت اوست از اندیشه پیشین ایران سوال کردن که در مورد زبان عوستا همون زبان اورامی در کردستان هست آیه سیروان از سنندش پرسیدن درود به سنه و اورام اورامان زبان اورامی در حد مادر زبان های کردی امروزه و حد فاصله بین همه, زبانهای همه زبانهای کردی شیرینه. زبان های همه زبان های کردید شیرینه زبان عورمی حد فاصله زبان های و ضمنا زبان عورمی حد فاصله زبان های کردی با زبان فارسی و پهلوی و خیلی از واجه های پحلوی یا عوستوی در اونجا در این زبان پیدا میشه اما اگر این که بگیم ما تمام این زبان که ازی از دوستان کرد و هم من میبینم که همه با, با شتاب همینه میگنیم بله زبان محبستویه نه چنین نیست تغییراتی پیدا کرده زبان ارامی در حقیقت گنجینهی نوشته های باستانی همه کردان بود که متاسفانه مورد بیمهری قرار میگیره در کردستان و با اینکه زبان سورانی هم یک زبان شیرین کردی هست اما زبان ارامی داره همینطور مرتبند عقب میره درست نیست جوانان کورد و به این زبان بیشتر بپازم. روز بخیر به آقای هدایتی. یه پرسشی داشتم این که نام‌هایی که در شاهنامه است که به تورانیا میگن مثلا افاسی ها پیران، ویسه و دیگر نام ها اینا نام‌هایی است که ایرانی ها به تورانیا میگفتن یا نام‌هایی است که تورانیا بر خودشون گذاشتن. سپاسگزارم. خشایار از موشهر. درود به خشایار و نوشر این هم ایرانیان تورانیان هر دو آریایی بودن و نام‌هاشون هم یگانه بوده مثلا می‌بینی فرنگیز و مانیژه و هومان و پیران و اینا همه نام‌هایی که مفاهیم آریایی داره خب اون نام رو اونا داشتن که ما هم به زبان فارسی داریم هر دو یک نژاد و زبانمون یکی بوده سورنا یعنی چی persidan پیامکا سورنا نام یک سردار بزرگ ایرانی که از بخش از ایران در حقیقت کرد که در تاریخ آمده. اومده زمن تشکر از برنامه پنجره به مهزاد از جناب استاد فریدون جنیدی سوال داشتم در خصوص ریشه زبان عربی با ابری یکیه یا نه و سوال بعدی میینه که چگونه میشه با بنیاد نشابور همکاری کرد جفری هستم از ساری ما چکرم از اصطاد عرجمن بدروس بین زبان های سامین جد هستش که با اندکی تغییر میبینیم که باجه ها دگرگون میشن اما در حقیقت پجوهش ما اینه که بیشتر ریشه های این زبان های سامی در در زبان های کوهن ایرانی دیده میشه در این زمینه چندتن از یاران بنیاد شغل کار میکنم من خودم هم در دفتر دنگست داستان ایران واجه های ریشه ای که نشون بده که ریشه از ایرانه برفته به اون دیار برای شما یه مقدار زیادی رو آوردم. به زودی به دستتون میرسه. پادر استاد جانه ایدی فرداتی و ایرانیان چرا از دروغ داشتن و دروغ چه بدیهای را برای جامعه دارد با سپاس شداتون خیر آناییتا حسانوی هستم از گرگا آناییتا روز بر تو مگه من بار اولی که تلفن زده بودی به نگفتم که شمرده بگو تا من بفهمم از بس تون تون گفتی ما هیچ چی نفهمیدم دفعه دیگه منتظر تلفن هستم من میخوام یه بار دیگه پخش کنن اگر اجازه یا یه بار دیگه اینو پخش کنید لطف میکنید استاد فردوسی و او ساجنای دی فدرسی بنی خانه ایرانیان چرا ازدروق تنافر داشتن و دروغ چه بدیه برای جامعه داره با سپاس شماتون به خیر آناهیتا حسرنوی هستم از ورما ام آنایتو درو... دروغ دو جور هستی که دروگی که در گفتاره یکی دروگیه که در کارداره و فردوسی و ایرانیان همه از دروغ بسیار متنفر بودن اون روی کار اهریمنی میدونستند به هیچ وجه روان خودشون را رو آزار نمیدادن با گفتن دروغ یا کاری که اون کار هم در واقع یک نوع دروغ باشه همه به راه راست همه به راه کردار راست و با گفتار راست با اندیشه خوب جهان بسیار زیبایی بر خودشون فراهم میکردند سلام رو ارز میکنم خدمت جناب آقای دکتر فریدون جونهیدی در مورد پاک شدن تاریخ اشکانیان در دل شاهنامه و در واقع داستان همستی آرش کمانگیر نخواستم میشون یه توضیحاتی بدن اگه امکانش وجود داره و همچنین در مورد پیوستگی تاریخ میان ایرانیان و مصریان اونطور که من از منابع مختلف گهگاه باش مواجه شدم مصر رو واژه معرب میصر یا مهر میدونند میخواستم در این موردم اگه ممکنه توضیحاتی بدم آریوبرزن هستم از تهران درود بر شما و درود روان آریوبرزن بزرگ اشکونیان متاسفانه سلسله شریف اشکونیان که سلسله بر بنیاد حکومت مردمگرایی اون چیزی که امروز میگن فدراتیو بود با خیانت اردشیر متاسفانه و با کودتایی که اون کرد به طور کلی از میان رفت و تمام آثار سلسله اشکانی رو در ایران منهدم کردند به خاطر یه دروغی که هزاره بدی و هزاره نیکی خواهد بود و این رو متشل کرده بودن اردشیر میخواست بگیم ما در هزاره بدی نیستیم هزاره احریمنی نیستیم بنابراین همه آثار اشکنی را از بین بردند و ما در چند جا یکی در یک جندیسی در خوردستان بالکوه یکی در لاغزار بیرجند یکی در نزیکی نسایه در مرو اونجا و اخیرا در افغانستان مقداری چیزها کوچیک از زمان سلسله شریف اشکانیان باقی مونده از نوشته ها هم تا اونجا که الان در دسته ما است فقط یک نوشته یا حد اکثر دو نوشته یکی نوشته ای هستیش که درخت آاسک نام داره که واژهای های توش هستی که اتمالا تاریخ یادگار ذریران باشه. نوشتهها هم حتی برگردوندن و از بین بردند و این چنین کاری کرده شیر با ایران کرد من چند بار گفتم اسکندر با ایران نکرد و متاسفانه این سهله شریف از بین رفت و فردوسی میفرمد که از ایشان بجز نام نشنیدمم. نه در نامه خسروان دیدم ولی خب اونها نیکی بودن من در یکی دو تا برنامه گفتم از یه شهری از خوزستان میگم دا وقت یا نه که نامه‌ای نوشتند که ما از رئیس انجمن شهرمون دوباره انتخاب شده بر بنیاد قانون دیگه نمیتونیم انتخابش کنیم مگر شاهشا ویزر شاهشا موافقت بکنه میگه چون مرد شریفی بوده و شما هم دوستش دارین موافقت بکنین برای بار سوم انتخاب بشه این که اتفاق افتاده دو هزار سات پیش زمان ش یک چنین آین کشورداریایی تاری رو حد شیر از میان برداشت. درود بر استاد شوروقختانه امروزه به اندازهی ایست تا شهرستانی ها با تهرانی ها سنجیده میشه که تمام گویش‌های های شهرستانی نزدیک به نابودی است متاسفانه همینطوره متاسفانه همینطوره. باید فکر میکنم که رادیوها ها و تلوزینا شهرستان ها, و استان ها به گویش محلی خودشون صحبت بکنن و یک یورش خیلی خیلی بزرگی در سرتاسر ایران سر ایرانه و در حقیقت به آین شده یعنی اون چیزی که فعلا امروز میگن مد که همه تو کشه های کوه و کمر بخوان به چیزی شبیه به تهرانی. البته هیچ کدوم از اینا هم نمیتونن اون تلفظ تیرانی قدیمی که من شنیدم و اتمالا شما شنیدین یعنی بیان بکنن با آمیخته میشه با آواهای ویژه زبانهای خودشون که خیلی هم بد آهنگه ولی هست و ننگشون میاد که یه زبان چند هزار ساله نیاکان خودشون رو زبان بیاره یه تلفن دیگه میشنوید من استانمون خیلی خوبه دون لطفا نظرتو دو دو دو بپرسید که یک کلمه ما چه جوری بتونه بفهمیم این کلمه عربیه یا فارسیه حتی چه میشه فهمید که این عربیه لا. ممنون میشم تشکر ا اگر یه واژه‌ای مثلا عین سات و زاد و تا و و اینها رو داشته باشه خب این معلومه عربی اگر اینا رو نداشته باشه فرهنگ هایی هست که اینا رو نشون میده که جلوش نمیشن عربی یا فارسی به فرهنگ ها مراجع بکنید و به خاطر دارم یه فرهنگی هم مثلا 20 سال پیش موند شد فرهنگ واژه های تازی در فارسی معاصر. اونجا اینا رو نشون میده سپاسگزارم زمان دیگه این همونده شاد باشید پیروز باشید شب شما خوش شب ایرانیان خوش شب کننده برنامه آقای محمد رضا صدا بردار آقایان طاهدی و Heidari ارتباطات حمید فروزنده آقای حمید فروزنده عزیز و آقای سید مرتضی حسینی پش آقای مهدی ابراهیمی همایگی برنامه آقای سهراب ستایشمنش عزیز سردبی و مجدی برنامه حمید رضا هدایتی رات شب خوش مردمان ایران